حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا روز بهتر بلک هوادارته چون بلدی بخندی و چشم دل ببازیم با دل ببندی دل ببندی اش دل ببندیم ازباک دلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا نجواه که نلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم ام چترین خوبین رادیو پاسورده 997 امروز سه شنبه 18 اسفند 1394 تبریک میگم واه واه بیاین جلو ماچتون می‌کنم بیاین جلو بیاین جلو ماچ بی بده 1 2 آها این وقت مبارک, مبارک سلام علیکم مبارک. مبارکه سربونت دارم روز 8 مارس روز جهانی زن سعید جان بده ماچ یکی این و و و سامی کو آه. سامی سامی بیا من بدون من ماچ ما بیا. بیا بیا, بیا. بیا. بیا. ماچو بده ماچو بده ما... خیلی مبارک شهران ماچو بده ماچو بده دوری دوری دوری آها آه. خوشبخت ها خب بچه‌ها چیز کول الیو سارا کجاست ببین گفتم که روز زنه اگه سر می‌خواد بزارو برنامه‌ریزی کنیم یعنی شبا روز زنه که نمیشه کار ول ویل کرد بهمون خدا ده. چی میگفتیم حالا برش؟ روز زن بود برای خیلی تبریک میگیم بهتون اینشالا ست سال ممبر. به این روزا ها همه بچه ها امروز الا برنامه های داریم براتون برنامه روز آخر این هفته است و دیگه میخوایم در مورد ها و خاطرات صحبت کنیم که خاصه خانوما سین این الیو سارا جلال ن... بیان تو برنامه بیان، ها بیان, بیان باشه برو شهرام سامی یه موزیکی برین پس که الیو سارا به پیوندم به ما روز جهانی زنه و بعد باشن دیگه نمیشه که نباشن همونطور که گفتم امروز 18 اسفند 94 مصادف با 8 مارس روز جهانی زن و به همه خانم ها این روز رو تبریک می گیم برو بریم سراغ برنامه امروز دیشب یادتونه ما صحبت‌های آقای روحانی رو پخش کردیم گفته بود چرای عالی امنیت ملی هیچ مسببی برای ممنوع تصویری آقای خاتمی نداشته و با ذکر این که این حرفا شبیه شوخیه اظهارات آقای محسنی اژئی رو رد کرده بود آقای اژئی دیروز مصاحبه دیگه کرد گوش بدیم که بفهمیم جریان این خاتمی و ممنوع التصویر بودنش چیه بالاخره اونجا در مورد رئیس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مسببه تصمیم گرفتن که باید ایشون ممنو تصویر باشه و به اصطلاح در رسانه ها نه خبرشون و نه تصویرشون بله. منعکس بشه بله البته ایشون در ادامه این رو هم اضافه کردن که البته همونطور که کردم داستتان حتی اگر این مسبب هم نبود و این تصمیم دبیرخانه هم نبود خودش دستور غذایی داده دستور غذایی بر اس... اساس اختیاراتشه و تا الان هم به قوت خودش باقی است و لازم الاجرا است بله یعنی دیگه آب پاکی و ریخ رو دست همه میگن کار از محکم کاری ابنه میکنه همینوها الان خاتمی هم از طرف دادستانی هم از طرف دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ممنوع تصویر و ممنوع بقیه چیزهاست کلن حالا هر چقدر دلش میخواد آقای روحانی به خاتمی بگه برادر بزرگوار و حضرت آقای خاتمی وا حلو حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمی‌چیک. فعلاً سنبه اونور انگار پرزورتره تره. آقای ایجی در ادامه‌ی صحبت‌هاش از همون ترفند آقای روحانی استفاده کرد با در مورد اینکه چرا روحانی مصوبه دبیرخانه شروع عالی امنیت ملی رو که خودش رئیسش انکار میکنه اینجوری فرمودن این فرموده ای آقای روحانی جناب آقای رئیس جمهور یا بر اثر مشقله زیادی که ایشون داشته یادشون رفته چنی مسببی و یا اینکه که احیانه این مطلب رو جدی نگفتن و به شوخی حرفی زدند بله مشغله زیاد داشتن یادشون رفته یا شوخی کردن کلا این اصطلاح شوخی و شوخی کردن و اینا داره به یه اصطلاح رایج و پرکاربر در ادبیات سیاسی ایران تبدیل میشه هی hey, این به اون میگه شوخی میکنه هی hey, این اون یکی به این میگه این شوخی کرده کلن شوخی شوخی همجی داره مملکت اداره میشه دید خیلی هم خوب و پرنشات الحمدلله. با الی بله. بله سلام علیکم سن. ماچ ماچ سارا مارچ روزتون مبارک میشه برسیم. کجا بودین؟ روزن. جلال گفت شما روز زنه بریم هم دیشقاها تونیم آره کلی کار گفت بعد گفت بریم راحت و شما خواستیم و امروز کار داریم با ها روز زنه بله. سارا خانوم الی خانوم کار داریم بایدو. با حقوق داریم. نه روز... چون به خاطر روز زن پاداش اه... من اینجا باید از مدیریت رادیو خواهش کنم که... دیگه من ببخشید اینجا باید از, م... از مدیریت خواهش کنم آقا روز زنه خب راست میگن دیگه همه جای سکهی بالاخره یه چیزی کارت یه تاریخ. کارت تبریکی آره راست میگن درستش میکنیم، حالا ف... صحبت میکنم اینشالا که درست بشه اه. روزتون مبارک باشه، روزتون مبارک باشه امروز کار داریم با تون هستین اطمان تو برنامه حرف میزنیم با هم به نوستالژی و خاطرات زنانه موسیقی او یس، او یس سلام منه. سلام نی سا می بکن یا وقت گول این بختن یا تمام رو نخوره ها. اگه هنوز بایه هست من خودم و برش در نظر گرفتم نه نه قردم یه زمانی بلند بوده چشم و میگن مشکی بوده نه نه خلاصه یه زمانی واسه خودم دافی بودم نه نه 97 سال بیشتر ندارم مالک ده هزار زمینم هستم تو الهایه دنبال یه پسر میگردم منو فقط به خاطر خودم به خاطر دلم نفردم مطاهر پسر کاجو خیلی ممنونم مادر جان دیگه خوشم میاد سعید و محسام نمیخیز شدن آه. ببین سامی ببین ناز کنی رو هوا زدنش سن، دیگه یه کمی سن، دیگه نه زیاده. نه نه نه ببین تو الهیه ده هزار متر زمین داره تو نمیدونی کجاست الهیه تو الهیه ده هزار متر زمین داره اگه الهیه دیده بودی میرفتی آره آچ خانم ببخشی سامیمون الان آمادگی نداره مسی که ولی سعید داریم قد بلند صدا. تبریزیه یه دونه مرسا داریم مو بلند چش ابرو قچنگ با نمک دیگه ظاهر و باطن اینی که ما داریم دیگه ما هستیم ما هستیم کلا <تصفیص> <كلان>. حالا <تصف> <تصف> دعوا نکنین دیگه هر کی انتخاب کرد شما دیگه خودتون با هم اه... صحبت می‌کنین ساج جان چطوری خوبی مرسی فرسید جان مرسی ممنونم من مم طرف تو دیگه دیدم که یه دفعه یعنی یه نیم شدی رفتی دیدی هزار متر زمین خیلی خوبی بود خیلی بود چه خبر از آب و هوا. فرشیجان پیش بینی شده که از امروز آخر هفته دریای اومان خلیج فارس مهوا جان. حتی, حتی بعضی از جاهای اصل نوستالژی جنوبی کشور و برق و رعدبار و وزش باد داریم. یعنی که من به خصوص مثلا برای شیرازی از این هواچندان خوب و جذابی رو پیش بینی نمیکنم تو این آخر هفته. چون این عزیزان بر اساس مطالعات موجود هر جایی متره مکعب چم هم ببینن خیلی خوشحال پتو و زیلو میذنوا با است کاوتشیو دو پیاز آلودشونو میکنن. اما تو این هواجی صرتحن د بکرد دیگه من البته آرزو می کنم پیش بینام غلط عذاب در بیاد و عزیزان همه به کارهای اشغالیشون بتونن برسید. برسن ما امیدواریم که همینطوری بشه برسن شیرازی ها تقدیم به شیرازی ها شیراز, شیراز شیراز شیراز می جان ناز واسه افت و چنگ البورگن می زنه بهام تیرشین بولبول بل بل بل بل تو کچا تو پاس کچا غزل میخونه شروی تر حافظ میریزه از سر چه شیراف عطر گل یاس منثرن به هار هی سر میکشه از تو خونوی باز و بلنگش این جان که اگه چیش تو چیشوی هیکی ساز سازه دلشه میشنفی از جنگ قلبو یفزوری لیستو سینمی مردم میشیرات قلبو یفزوری لیستو سینمی مردم میشیرات تابی خودی ریش میس بزنه تو درد دنگش تابی خودی ریش میس بزنه تو درد دنگش اوتوف فاشید ما نو فی اوتوف فاشید خداف خداف تو خدا شوشتم از تو لباسام بای بای سروش بای بای خیلی متشکرم من فاش مرافی هستم از رادیو پاس وردا میخواییم بریم سراغ نوستالژی های زنانه خاطر بازی با خانم ها در روز جهانی زن بدانید و آگاه باشید که هرچند مقوله خاطره و نوستالژی زنانه و مردانه ندارد و همه ما خاطر بازیم اما مسئله این است که خاطره های زنان سرزمینی که برای قرن مردان در آن سالاری کردند حتما باید در برنامه‌های فشرده خاطره بازی مورد بررسی قرار بگیرد تا بفهمیم که دوران مرد سالاری و زن سالاری تمام شده است و در حال حاضر تنها سالار عصر ما همان سالار بستنی است در حال لیسیدن بستنی سالار به نوستالجی های زنان پردازنده رادیو راژیو هست دادا دادا دادا دادا دادا دادا دادا دادا. زن زیبا خوبند در این زمون فلا مونه بید بنا هرگز نمونه ای خدا زن گل ماتمه فارو پل با همه زن نام رمون دشمن جونه دل سرای غمه فمه عالم کمه اونه دل نمی بیزن همونه و نه مهسا. بای. جون، روز جهانی زن، من امروز رو به تمام شیر زنان کشورم در همه جای دنیا تبریک میگم. امیدوارم که همیشه سر و موفق باشن. حالا هستم از. به به ممنونم. حال خانم از پاریس به شما تبریک میگیم روز زن و رو به همه زنان و خانم ها و مادران ایران زمین و ایرانی‌های سر تا سر کشور و خارج از کشور فرق نمی‌کنه. دوستان خیلی از ماها برای مامانای قدیمی دلمون تنگه و وقت خدا نکرده به مامانهای جدید بر نخوره مامانهای جدید جاشون رو تخم چشم ما اما مامانای قدیمی یه ویژگی مهم می داشتن و اونم اینه که اصلا رشد بچه هاشون رو قبول نداشتن یعنی ببین بچه ده سالش بود همون نگاه و سرویز رو از مامانه می‌گرفت. 20 سالش هم بود مامانش به یه اندازه نگرانش بود 40 سالش هم که بشه 50 سالش هم که بشه هنوز همون نگرانی های تموم نشدنی مادرجان ادامه داره که داره چرا؟ خب بچمه حالا شما به کسی نگید که مثلا این بچه یه مترو قد قدشه 100 کیلو وزدشه تو محل کارش هم تو هم رئیس 10 نفره اینا برای مامان قدیمی اصلا دلیل نمیشه که اینه که اصولا خاطره اصلی که از مامان قدیم بیاد آدم میاد اینه که از در خونش که بری تو به بحانهای مختلف سعی میکنه چیزهایی رو که از بچگی دوست داشتی بکنه تو هلغومت مثلا شما عاشق حلیم سر تون بودی تمومه یا شما از بین سبزی های مختلف فقط تره دوست داشتی براتون جدا شده آماده است بالاتر از همه اینه که سر سفر مامان جان یهو مثلا یه سیخ کبابشو میده به شما میگی مادر من, من کباب دارم من با خوا من فشارم میره بالا زیادی گوشت قرمز بخورم بخو بخور بخور خوبه برو خلاصه قصه همینجوریه دیگه موقعی هم که داری میری از خونش بیرون انقدر اقلام مختلف همجوری بارتون میکنه که کمرتون زیر بارش خم میشه ولی ارز اه... و حضورتون جایی دیگتون رسمن مراسم عروسی برگزار میشه ولی براتون نمیاری یعنی مامانای قدیمی رو باید گذاشت رو تاخچه وقت کرد. ایشالا همشون حال حاله ها صحیح و سالم و قبراق باشن بر بچه ها برن خونه شون چرونی. خاطره نباشن خود خود خود خود خود واقعیت باشن از این سر دنیا تا اون سر دنیا میریزم زیر فاها هزاران گل زیبا از این سر دنیا دنیا میری زمزیره باهات هزاران گل زیبا تو جور من این تو عمر من این بودی بی تو گل زردم تو روح من این بودی تو عشق من این بودی هزار بار بگردم تو جور من این تو عمر من این بی تو گل زردم تو من این مالت تو اش من این ما بزار دوره ما چهار تا بردم هم راهه دو پااه پی دورش می گردیم بیا به دوره دور مادر همینه هر شب دونه, دونه حال میاریمش بتونه اووض پی دورش می گردیم میشیم مکسلوی بونه ها من یکی که هیچ نوستالژی زنونهی ندارم یعنی همچین دلم نمیخواد خاطرات دخترو پنی رند است بزنی نمی میرن به یاد بیارم همونا هم نمی فهمم که این شعر زده زن و یاد پسر بچه‌ها داد که ما هر وقت میخواستیم دزد و پلیس باهشون بازی کنیم هر هر به اون میخندن و این شعر رو می خوندند یعنی تو محلی ما اینجوری بود بعدم که تو خونه هر بار مهمون داشتیم جای اینکه بابام بره کمک مامانم بعد میرفتم رفتم استدلالشون بود که دختری بعد یاد بگیرین این کارا رو یه بار عقد دست خاله همسایه خونه بچگیامون اومد یه سر به مامان بزنه منم اون ور نشستم داشتم کارتون تماشا میکردم یه دفت دیدم اقدس داره به مامام میگه این دختر چند سالشه؟ مامانم گفت چهارده. اقدس خانم گفت واه واه بفرستش بری تو بسخونه شام تو بپزه دیگه سن کارتون دیدنش که نیست وقت شوهرشه یعنی من تا یادمه شغل دخترا و زنا رو از پیش تعیین میکردن ای بابا سلام بهمگی با آخرین استیک در خدمت شما هستیم و زمین تشکر از تماسای شما با استیک خیلی سری میریم سراغ اولین شرکت کننده استیک این هفته از آبودان ویا دمتون گرم. میخواسم یه غذای ملی براتون برایتون بگمونه مايه سبزه. کوکا این مايه تو بعد بری عیل لنجیاله. بیشتر تو تازه بگیری. بیاری تو خونه بازش کنی. شکم مايه رو در خالی کنی. بیشتری خوب بذاریش تو بخارپزی. چند دقیقه بخارپز بشه. سبزی مايه و تم رهندی رو. کاشکی با هم دیگه تف میدی. درست میکنی. قاتی میکنی. میزنی تو شکم مايه. میندازیش رو منگل. میزنی کبابی کبابی میزنی. آدمتون گرم. بالو هم آبادان. دمت شما مگرم. خب صحبت از مایی سبور شد دیگه باید بریم سراغ شف شهرام ما از اول این برنامه استک به همه گفتم همین استک تمام بیا دیگه یکی کم بود اینجا هم شهریاش هم اومده بامونی دیگه؟ نه داشتم بلن فکر میکردم ها همینجا این قضا رو برنده استک اعلام میکنم بله خیلی متشکرم شما نمیتونین این غذا رو برنده استیک فقط خودتون به شخص اعلام بکنین ولی خیلی ممنونم از متشکرم از شما شف شهرام از شف مرسان تشکر می‌کنم بریم سراغ شرکت کننده بعدی برای برنامه استیک من فکر کنم حق های گل زایه شد چون معروف ترین غذای اصفهان که همون بریون یا بریونی هست مطرح نشد تو این برنامه غذای بسیار عالیه شوش گاو هست به همراه گوشت چرخ کرده اینا میکس میشن و با نون چرب به اضافه آبگوشت در کنار دوغ ماست محلی و نعنای فراوون سرو میشه فرطهاشم دوستارت از اصفهان ممنون پرودیوسر جلال به به اصلا از قدیم گفتن دلم میخواد به اسفحان برگردم بازم به اون نصف جهان برگردم به به هم... همکار عزیز واقعا به این همه زوق و سلطه دوستمون از اسفحان منم جا داره بگم به اسفهان رو کتاب بنگری بهشت سامیون بحبه. بحبه. بحبه. بحبه بحبه بحبه. دیگه. آه آه ده دیگه. باید... من بس. چرا دوستان عزیز پروڈیسرهای ما با هم دوستن ما اینجا فضای دوستانهی داریم فقط با هم بحث میکنن اختلاف نظر دارن بریم سراغ چکت کنندی بعدی سلام یه غذای سنتی شیرازی قدیمی می‌خواستم براتون بگم آب گوشت عدس کلمه دو رفت که یه زمانی یه جوریه یه گوشت لونو با پیاز و علف از... غذازی می‌گیریم می می می با می‌کنیم به جای نخود لوبیا عدس می‌ذید اول 13 میلی‌ملی هم کلم فر توش خودمم خواست خیلی فوق خاصیته آبش چیت می‌کنین بقیه‌اش مثل گوشت کوبیده می‌کونید می‌خوری اگه میمونی می‌خوای بری نخودین آباد بود داره مادر بزرگی شیرازی خدافظ ممنونم، پرودوسر مرسا من هی میگم من با این غذاهای نافاخ مشکل دارم باز هی میان پیشنهاد عدس و کلم میدن ببین یکی دیگه چیه که خودشون هم گفتن با بود داره خب کوکام مایی سبور بخور نه باد داره قوتم داره یعنی من خوشم میاد این همکارم اصلا توجهی نیستن و او... ببین مرانگیز ما به خاطر خودت میگم خواه فرشید تو رو خدا به این حالی کن من مرسا هستم مرسا هستن مرسا بله هستن به پرودوسر بریم سراغ شرکت کننده پایانی این ستیک پایانی خیلیم فرشید برشت توبین فرشید امشون مهمون محیط یه چباب برای بزنین دور همی تعارف نکنید فقط بهتره از چباب سامی از یا سید فرغون همه بار بار بار بار بابا چی بهتر از کباب آقا من پرودیووس میکنم بله ایشون پرودیووس میکنم ببینید منم هم همینطور اصلا با کباب من با یه حال عرفانی میرسیم که اصلا بله همین هم میرودن دیگه میگم منو میدونی حال عرفانی فوشه نیست فرشید من اینو میکشمش نگی نگی گفتی آقا, آقا آقا بریم کجا شادوش چی بگی حالت گرفتی بزن برای پرودیوصر های محترم مختلف میذین بگيرين شما نظر نشین نظر نگی نگی نگی اصن کار درستی نیست اجازه بدین اجازه بدین اصن کار درستی البته ما بارها گفتیم تو این برنامه همه با هم دوست هستن واقعا خیلی ممنونم که میکروفونشونو رو بله خب این استیک هم دیگه به پایان رسید تا دیداری دیگه ان دیگه استیک نداریم قابلمه هاتون جوشان باد دلم میخواد به اصفهان بردم فوزم از استرالیا زنگ میزنم امروز رفته بود این مغازه ایرانی هست اسمش حسین آقا است کادموس آورده بود من هشت سال بود آوسه پی نجویده بودم میفهمی هشت سال سیامک هستم از پرد خدا برام برم. سیامک جا خیلی سلاموار به حسین آقا برسون واقعا خیلی غم انگیزه دیگه پیکی میجویی همجوری اشکات از گناهات سر زیر میشه راست میگه خیلی یه دی... خیلی وقته هشت سال من خیلی بیشتر از این حرفا است واقعا این نمیدونیم آدم پیکه یا پیاز اینجوری که شما داشتین حرف میزنید راجبش خیلی ممنونم از تماس شما ارز تبریک به مناسبت فرارسیدن 8 ماچ روز جهانی زن به اطلاع خانم های عزیز میرساند مؤسسه آموزشی تربیتی مرد زندگی با سالها سابقه مفید در آموزش رفتارهای درست به مردان ایرانی و تغییر طرز فکر و روش زندگیشان آماده ثبت نام از عزیزان شماست شما می توانید در آستانه روز زن عزیشان بخواهید به جای خریدن هداایی مختلف با سفت نام در دوره‌های رفتار درمانی، گفتار درمانی، طرز فکر درمانی و سایر درمانی‌ها تبدیل به مردی ایدئال شده و خود را به عنوان حدی ارزشمند برای تمام عمر به شما هدیه داد. دوره‌های پشورده آشپزی در پایان این دوره شوهر دلبند شما علاوه بر رو قادر به پخت فسنجان برم سبزی، مرغ شکمپور، کوفته تبریزی و سایر غذاهای مجلسی و خوشمزد نیز خواهد بود. بنده تو قبل از شرکت تو این کلوسو اصلا نمیدونستم خونمون آشپزخونه هم داره. یعنی راستش نهیده بودم رو هر چی مخواستم داد میزدم افت میابرد میزش جلو بخوردم. می الان خیلی عوض شدم همه چی درست میکنم از مکارانی شروع کردم الان رسیدم به مرسم آخا خا خاچ به سرم دیدی چی شد حوستم رو کردیم برنجم رفت بای بای کلاس های توجیهی و شرکت در جلسات روانکاوی برای قلبه بر تفکرات مرد سالارانه و زنان مردانه کردن امور خانه قبل از اینکه شوهرم تو این دوره ها شرکت کنه خونه که میومد اگه ازش میخواستم لیوان چای خودشه که خورده ببره بذاره تو آشپزخونه میگفت این کارا زنونه از خیلی حساس بود فکر می‌کرد مردونگی‌اش آسیب می‌بینه اگه کمک کنم از وقتی تو این دوره ها شرکت کرده چشمم کف بهش کلا عوض شده بدونن که به من بگه میره دهکیلو ده کیلو سبزی و باقالی و نخود فرنگی میخره پاک میکنه میذاره فریزر مربای بالنگ درست میکنه به چه خوشمزگی الانم رفته آرایشگاه ناخوناشو مانیکور کنه یعنی واقعا عوض شده و دوره ها یاموزشی قلبه بر احساس غیرت مردانه و تصبات ناموسی آقا دروغ چرا؟ من تا قبل از این که تو این دوره شرکت کنم خیلی غیرتی بودم یعنی یه چی میگم شما یه چی میشنفی ها؟ هر مردیت دیویس متری ناموس همم رد میشد اصلا آنبر میچسپوندم بعد تو این دورا که به ما فیلم حیات وحشا نشون دادن گلاب به روتون وقتی دیدم توی فست جوفگیری حیوان های نرم دقیقا اینجوری میشن خیلی بهم امبر گفتم اسمان تو منگه گاو کوهان داری؟ اینه که عوض شدم الان خیلی بهترم یعنی راحت شدم زنم هم راحت شده هر دو خوبی ملان برای روز جهانی زن به شریک زندگی خود سبتنام نام در دوره های آموزشی تربیتی مرد زندگی را پیشنهاد داده و یک عمر آرامش و آسایش را به خود و خانواده‌تان هدیه نمایید. مؤسسه آموزشی تربیتی مرد زندگی. پیش بیا فری پیش پیشما بیا اومدن. سلام پریووس خوبی اومدن. سلام آقا این ترقه زمزمه. و نارنجک پرونیو تماشاگر رو تو ورزشگاه انگار داره همجوری کار به جای باریک میکشه و کار دست فوتبال میده کلا آره فرشید جان متاسفانه امروز زمزمه گرفتن میزبانی ایران بود تو یعنی از ایران از باشگاه های ایران تو بختی از سایت ها و رسانه ها با تیت های مختلف و جور و جور جام جم تیت زده خبر بد برای فوتبال ایران بشکن زدن عربستانی ها به خاطر حماقت چند تماشاگر آخر مطلب هم اومده نمیدانیم الان باید یقی نارنجک اندازها رو بگیریم یا اونایی که اجازه دادن به تماشاگرها نارنجک به آزادی گرد بله دیگه فکر کنم کسی خربازه که میخوره دیگه پای لرزش هم باید بشینه دیگه جای گلی هم نیست. بله همین جوریه. عزیزان البته امروز باشگاه پرسپولیس بیانیه داده و نارنجک پرونی رو محکوم کرده تو ورزشگاهو گفته مسئولیت امنیت با ما نبوده تفاشیانم امروز تو مالزی در مقر ای اف سی با همون لبخندای معروفشردم همینجوری البته مشغول چانه زنی با مسئولان فوتبال آسیاس برای میزبانی ایران خیلی خوب امیدواریم این لبخندها کارساز بشه مشکل حل بشه دیگه چه خبر از ورزش یه خبرم از مربی های تیمای لیگه دارم در مورد مصاحبه بعد از هر بازی که داور معمولا یکی از مقصرای باخت شناخته میشه البته در صورت برد وضعیت متفاوته کاملا به این صدای پرویز مزلومی سر مربی استقلال گوش بدیم البته اینو به جلال نگوش بده قسمت اول حرفاش مصاحبه بعد از برده و بخش دوم حرفاش بعد از یه شکسته گوش کنی من راجع به داوری حرف نزنم برم که خودم پنجا پنجا کن یاد گرفتیم اومدیم اولین چیزی که میکنیم اول نشسته بینیم که داوری رو سیب قرار میدیم از که یاد گرفتیم بهشون و داور رو به حضابت دیگه واقعا من متاسفم برای وضعیت داوریم تیم ما رو باعث شکست شد بله دی فشار رو مربی زیاده ولی مربی ایرانی لامصب احتمالاً فشار زیاد باعث میشه حافظه هم ضعیف بشه دیگه متاسف هم. آره همه فراموش بشه آره. آره. ممنونم ازت فریدوز غریب و باد خداحافظی می‌کنیم تا شنبه هفته آینده تا شنبه خدا نگذر یمها یمسا را کیپ د I'll be home. با سلام بیستویک و سیه سشم شب را ضمن نگرانی از پرتاب چند موشک بالستیک در رزمابیش امروز سپاه پاستاران با مروری بر اناوین مهمترین خبرهابی امروز و امشب آغاز می به نظر معاون سازمان محیط زیست مبنی بر وجود دو هزار گرم در دست مردم و نظر اخشار اهل دعوای کشور که از این به بعد دیگه هر جا پا به جا خواستیم دعوا کنیم به گفت فرمون آچارچرخ اکتفا نکنیم کشف جدید محققین با این مضمون که با یک سال اقامت در فضا پنج متر قد آدم ها بلند می شود و نظر فعالان عرصه نعشگی که با ما که هرچی میریم فضای خمیده و خمیده تر می و احتمال تغییر حکم ادام زنجاملی در صورت همکاری وی در بازپرداخت پول ها وزارت نفت و نظر ناظران که با توجه به این اعدام ادامه ایشون قراره راه فرار خیلی بشه این ارث باباشم هم بده و عید حکمش بشه مهمترین اناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بوی بوی ماون امور زنان و خانواده رئیس جمهور به خبرنگاران گفت با توجه به افضایش سن نزدواج و بالا رفتن میزان تجرد قطعی در میان زنان به دنبال ارائی الگویی از زندگی حضرت معصومه هستیم تا با فرهنگ زمینه ی اطلاع موقعیت زنان مجرد فراهم شود در همین رابطه یکی از کارشناسان امور ضد مجردی که شوار به خبر ارما گفت اینگونه اظهار نظرها کاملا در ادامه ی پروژه نفوذ بیگانگان در کشور ماست و نتیجه آن به رسمیت شناختن امر مضموم و نامبارک تجرد است وی پیشنهاد کرد مسئولین با جرم تلقی کردن تجرد در کشور رستورانها کافی شاب ها و مراکز خرید را هم از ورود افراد مجرد من کنند تا شاید راه پروژه های نفوذ بیگانگان بسته شود پایان مرشوه اخبار با توجه به اینکه در ایام درختکاری به سر میبریم امروز تعداد زیادی از مقامات کشور در این مراسم شرکت کرده درختی کاشتند به همین مناسبت همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر امروز در مصاحبه با بنده گزارشی از اقدامات مسئولین در این زمینه ارائه کرده بود که با او هم به آن گوش فرامی دهید همکار گرامی بفرمایید که امروز شما کجا رفتید برای همکار گرامی امروز و لاریجانی و حضرت آیت الله مکارم درخواری داشتن و بنده هم هم اونجا حضور داشتم همکره خب به همکره گرمی تعریف کنید که این آقایون چطوری این عمل رو انجام دادن چه اتفاقی افتاد و چه اتفاق, اتفاق خاصی نیفتاد همکره گرمی این آقایون چند تا بیل زدن بلد. و بعد زحمت کشیدند دلا شدند و نهال رو کاشتن و همه چیز تموم شد رفت او خسته نباشن با. الان کجا هستید هم کارگررم. هم کار گرامی الان در محل نهالکاری مقام مذب رهبری هستم او بالی چلب با. بله با. هم یعنی میکارن هم کار گری. بله ایشون اتفاقا همین الان عباششی رو در رو برن داددن در ساعت را بیا بله بله بیل رو گرفتن آه. بله دارن آه. آماده مین که بیل رو در خاک برو کنن همکار کار گرمی. بله اصلا اصلا دستم کاله گرامیش چی شده بله اصلا گرامی عوامه مجلس راهبری الان شروع کردن به بیل زدن همه اون داراش دین دادن ایشون برای جانو دادن کاله گرامیش اصلا اصلا این گرامی چی شده بعد دارن بیل میزنن دیگه شاخه قول که نش بله بله بله بله من میگم کمال اجازه بده گزارشمو تموم کن چی شده وا چی می همکار الو. الو. گرم این آقای باغبون بیت راهبری خب. به بنده پیشنهاد شغل دادم برم کمکش با از تو من برم بالاخر ت میشه چی میگی و تو خبرنگاری من... باغونی مگهو همکاری گرم رفت اینجا. بله با تشکر از توجه شما تپشاوی دیگر برنامه ای دیگر و همکاری گرامی دیگر خدام نگهدار یعنی این کار کردن تو بیت رهبری اینقدر جذابه که این باغونی اونجا رو ترجیح داد به خبرنگاری؟ شی می گام ولی اصکی دیگه اصلا باه ربونی خب امروز روز جهانی زنه و سلامتی اصلا دیگه من باید اصلا خب برم یه گوشه بشینم سارا و الیویان برنامه اجرا کنن روز زنه دیگه ولی خب نمیرم که گلن ستا برنامه بیشتر نداریم فکر کنم من, من از ثانیه به ثانیه پشت میکروفون بعد استفاده کنم ولی از الی و سارا من دعوت کردم بیام به من بپیوندن تو استودیو نه. الی سارا خوبی این سلام اومدین در همین حد بهتون میکروفون میدم از نوستالژی ها و خاطراتی بگین که خاص خود خود, خود خانم ماست والا چی سارا بگو همه خاطره و نوستالژی زنده که نمیشه اینجا والا دیگه مثلا از اون پسره بگم که تو دانشگاه اون قد بلند بود موهای فر فری داشت بگو بگو آره این خوبه راحت باش دوستان دقت کنین قد بلند مو فر بگو گفتم آره حالا بگو دیگه بگو ولی حالا شوخی گذشته از شوخی گذشته یه خاطره که مثلا به خاطر زن بودنم برام به وجود اومده بود این خاطره مطلق شرندای خیابونی بود آخ آخ آخ این ماشینا که رد میشن بوق میزنن سوار شو اینا آره جا فکر نمیکنم نه تو نه هیچ مرده دیگه اصلا همچین تجربه ای داشته باشه بعدم نبود من تجربه میکردم ها حالا تو همون یواشکی میگم من یه با تجربه کردم فکر فکندم علی میری دختره مثلا با بنز آخرین مدل بیاد برات بوگ بزنه سوار شه تیکه بندازی بگید مثلا جگر میه بالا برسونم علی تو چی میگی تو چی قسمتت بشه شما جگر ولی واسه من که اصلا خوشایند نبود واقعا البته بستگی هم داشت آره بعضی واسه وقت انقدر مؤدبانه و دوستانه و بامزه بودم آدم ناراحت نمی‌شد ولی واقعا 90 درصدشون بعد بوتس خوب، خوبه نه بعد خوب... نمیداد بود بود نه نه بد بود بد اصلا ناقابل کاملا مرسی ازت از خاطرات بد بگذاریم یکی خاطرات خوب بگه چیزی خوباً که الان من به ذهن آمد یه خاطره گشت ارشاد بود یعنی ببین جهای جه شلوغ تا صدای یه صدای زرنهی به من میگفت بلخشید خانو قلب من میفتد کف پام اخ ابدا تو میگن می گلم. عزیزم چند دقیق وقت داری دیگه دوسته. همه جورش بودی <تصفيق> گلم خانومه خانومی خانومه خانومه هچی راحت بودم برای من که این خاطرها باعث شد تو جای خ... شلوق و نم... چه بیندم مثل میدون اصلی ها مرکز خیده ها همشه یه حس ای. داشته باشم عجب. آره در صورت در حال این بود خاطره و دیگه خاطره من. دیگه نه دیگه بمانه بمانه <تصفح> باشه خاطره زیاد اینجا یه چیزی بود ده متری کوچه ده متری اون خاطره ای ای بگوه. بگو بگونو <تصفح> بگو یه خاطره داره سارا خیلی خوبه بگونو سری بگو ولی من خونمون بچه که بود بچه که ساینه خی... توی خیابون ده متری بود بعد یه گروه پسر بودن روی دخترها اسم می‌ذاشتن بایی وای وای اسم منم گره شدم خوشگل ده متری <تصفيق> تای خوشگل خیابونم بودم بعد معروف بودی یعنی مثلا بچه معروف بچه. محله می آره ولی دیگه این ماعرفیات طوری شده و من برادرم دنبال دنبال دختر خوشگل دهمتری متری میگشت <تصفح> یعنی من تا یه مدت نه وقتی میدونستن برادرم بهش نمیگفتم فلانی خوشگل 10 متریه خدا خیرشون بده که آره تا یه مدت من مثلا شبا خواب نداشتم همیشه فکر می کردم تا که تاثیر کنم نرم دیگه بیرون <تصفح> <تصفح> <تصفح> مرسی که این خاطر گفتی خوشگل 10 متری ای و ایلی که حالا بماند و اینا <تصفيق> در این حد بکی <تصفيق> آره در این حد بودی شما <تصفيق> مرسی از خاطراتتون <تصفيق> روز زن یک بار دیگه مبارک بشه به شما بزنون. و همه خانمه همه خانمه ها روزشون مبارک عزیز که روز خوبی داشته باشم. سلام یادش بخیر فرشی، اتوبوس طبقه توه خط پیروزی اول خط سوار می شدیم می رفتیم اون بالا که بتونیم همه جا رو تا طریخت ببینیم آینه ای که بالا سر پلاش بوده ما رو نگاه میکن فهش میداد داد میزند اما بالاش تونی میکردین تخممه می پو سخ ما رو ریختیم می, می, می زننی.طرم خوابمون می برد جامعموندی و از ایستگاه که بر پش میادیم طریخت راننده می ما بالا سرمون پوستخ ما رو که میدید آی, می زد. آی می زد. ما رو میزند آی ما رو ما از اتوبوس بودیم یه که سوباین برگردیم در خونه. آی خوش بله اتوست و طبقه ها واقعا یادش بخیر یادمه دنیایی بود بسید خودش ایرباس زمان ما بود دیگه اون موقع ولی خدا این که کتک میخوردی و از ایسکا جامی موندی و اینا یادش بخیر داره نه حال واقعا اینا الان که گفتی یاد... اینا یادش بخیر نداره اتوست و دو طبقه یادش بخیر داشت خیلی ممنون است تماسه پسرم من چند کلو زفران بخریم از اینجا خوبه از ای؟ این بازار رضای مشهد این چیزاش خوبه ببینم دادی زفرون مسقال و گرم واحدشا نه کیلو ای با... جالت بکش اصلا برای روحانه جلیلالقدر مثل ما اصلا جرا یک کیلو تعریف نشوده که زود باشه سه چهار کیلو بخر بریم ببین دادی بابا سه چهار کیلو زفرون میدونی چقدر پولش میشه؟ خودت بخم خب اگه دلت میخواد دیگه؟ با... با... جالت نمیکشی تو روی حرف ما حرف میزنی. خواهی اصفان همین الان مصرف زفران رو حرام علام کنیم بره پیکارش نشته با مدد این جدای مردم تو بازار اخی وسط محشد ای بابا عجب آدم ها شما نتونست جوی حاجه را واعظو بگیری تو به من میخوای نشون بدی صحیح. او را بمینا زبان در آورده برای من دادی اصلا با از دست دادن این فرصت آینده آتا. من خراب شد؟ نمیخوام دیگه اصلا بایی خیلی برشد یعنی که ما به طولیت حرم رضوی نرسیدیم شما بدبخشدی آره دیگه چه پسر جان بابا خب میدونی چقدر سرمایه داره این تولیات من میتونستم باش کلن چین رو وارد کنم تو ایران روی ما اصلا این مسائل مادی و دنیاوی اهمیتی نداریم این معنویات هست که ما را محبوب قلوب مؤمنات و اگر شد مؤمنین کرده پسر جان چرا این را نمیفهمی هست بس که نفهمی دیگه. دادی پس با همون معنویاته تلا برو چار کیلوز افرون من طولیت میخوام طولیت میخواب چرا تا زود باوری پسرم؟ را این شایعات رو باور میکنه نصف المومن شایعه چی دادی بگو اسمان اعلام شده اونجا رئیس شده تو دیگه این نتیجه مذاکرات پشت پرده ما و مقام معظم رهبری دگه خب با... تو با توجه به تخصصی که داریم ما در پشت پرده باشیم حضرت عجت الاسلام رئیسی هم جلوی پرده خب دادی الان وزیفه شما پشت پرده دقیقا چیه؟ حقام معظم رهبری تحقیق فرمودن که ما پشت پرده مسئولیت ریاست برادران خادم چوب پر حرم را براختیم چی؟ یعنی چی؟ یعنی که از این چوب رو میگیرن به برد و برین برینیم بر بیرینیم برون بله بله بله خیلی مسئولیت حساسی این پست و معظم دار گوشم ما که ما کسی را در کشور از شما مناسبتر برای این پست نمی‌دون. قصر عویشی من... دادی. یعنی واقعاً زدی تلدوندیو یعنی. زدی قبل اخرا مو علاکه که دادی بابا گذاشتن سر کار ایشون. پولا بله؟ و بو سرمایه ها جای دیگه است و شما رو گذاشتن مسئول اینا. من به شما میگم اصل ماجرا اینه. ما از پشت پشت پردرها داریم حدرت حجتل اسلام رئیسی از جلو جلوی را داره دادی حالا این مسئول اینا شدی ببین حتی اقل یه بگیر ببین چند تا چوب پر میخواد من وارد کنم همشو براشون دیگه یه ای بزنیم نه نه نه ببینید آه. چوب پر هم و مسائل جلوی پرده پرده‌ای با... ما اون نمی‌شیم یعنی ببین تریکوندیو دادی ده... همه بابای روحانی دارن میره شغل پیدا میکنه ما رو نیگو ما هم داریم خیلی فقط باش ببینم بود. آه. بیا بریم اینجا توی این مغازه چند تا توپ چادر مشکی بخریم و میخواییم سوقاتی ببریم از مشه بیا تفده چند تا تو توپ؟ بله بله دادی چه خبره آه. شما با ادای اندازه گیری رو ظاهرن در جریانش نیستی خیلی نه؟ نه دیگه برای اه. همه مومناتی که مورد حدایت قرار میدیم سوقاتی میبریم دیگه پسر خنگ همینجوری مفتی نمیشه پسر یاد بگر این چیزها یا بریم ببینم باشه بابا باشه در یاد میگیرم واقعا شما زرنگی با کجا میری در یا خیالا بریم توی مغازه چادر فروشی دیگه آه بریم توی مغازه اسفل مومنین یاد داشت کن ببینم یاد داشت کن بایسته بابا بایسته با. بگو بگو بینویسن بگو, بگو دو توپ لمه دار تورتورکی از اونا بله از این برق برقی ها هم خیلی خوب ها بله دو سه تا توپ هم بعد دیگه دیگه. از اون از اون چادر عبایی برای مجالس خودم عبایی دا توپ هم عبایی بده دو توپ عبایی بله. عبایی به درد خودت هم میخوده دردی بله دیگه بالاخره میشه استفاده کرد دیگه بتفاقا اینا را حتما باید باشه پو بشور پسرم با پودر نشور خراب میشه تو هم یادت باشه نکنی چادر را که خراب میشه دادی به من چه این داری برای مؤمناتت میخری دیگه مگه قرار من بشورمشون دیگه بلاخره دیگه شاید لازم شد دیگه نمیخوام بابا برای من این چیز لازم نمیشه خودت برای اونها را همه هم رو به پیچ بباریم بازم بله بله یه رگه تو دیگه بالا خواستم یادی کنم از آدمایی هایی کسی نه نوستالژی خوبی دارن و نه اشق اولی به خاطر محدودیت ها یا اینکه قشر خیلی فقیر جامعه رو یا مذهبی جامعه رو تشکیلیم دادن مثل خود من نایدی هستم از از خیلی ممنونم امیدوارم هیچ وقت هیچ محدودیتی برای اشق و به خصوص اشق اول هیچ جای دنیا وجود نداشته باشه تکنیکرانی ما از خطاهای است. که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشن کامران ملکموتی سلام چه خبر ها؟ سلام فرشید جان اول اینه بگم که فیلم من سال و دار نیستم که چند روزیه نمایش شروع شده یه تصویر زنده بازیگر خارجی داشته دلبا برادران دلواپسر اداره اماکن دلشون به درد اومده کاتر برداشتن بنرها رو سردر سینما و بیل تیغ زد. زدند حبیب اسماعیلی پیش‌کننده فیلم امروز مصاحبه داشته گفته ما تایید ارشاد داریم اگه مشکلی هم بوده به خودمون میگفتین تعویض میکردیم فعلا فیلم با پلاکارد تی خورده داره نمایش داده میشه اما قرار عوض بکنه دونه دونه قرار بودش که فرش جان ما به فیلم‌های اکران نوروزم صحبت بکنه دیشبیه کیو گفتیم امشب میخوام فیلم اودا یک روز ساخته سعید روسایی رو معرفه کنم که یکی از ل اجاز میده بخش از صدای فیلم رو بشتم تو بعد من بیشتر توضیح بدمشنووی. یه جووری حرفی زنی و برویش هاارقاناند هست آخه مگه تا ننت آشپریاض که توق شار میشه میشن قبل خوشحالی از و وقتی مردم حرف نزنی مرتضم ادای قهرمان های جان فای خون بدرره در میار آدم حالش به هم میخوره از اون سرش گرفتی ها در اینجا چرا نباید نگهبان داشته باشه مگه محکم همه جا رو نگشتیم کجا بوده این؟ معط ایران اینجا ننی مازی مسثر بازی ما رو تمش گره کن خوشش؟ بله بخش از صدای فیلم عبد و یک روز رو شنیدیم ساخته سعید روستایی بازیگراش کیا هستن پیمان معادی نوید محمدزاده پریناز ایزدیا ریما ریمر رامیفرد و شبنم مقدمی بازیگرای اصلی فیلم هستن 26ام اسفند هم نمایشش دیگه رسما شروع میشه بسیار خب از موسیقی چه خبر؟ والا از موسیقی چند ساعت فرشی به مناسبت روز جهانی زن آرش تارانتیست کاری رو به اسم برخیز منتشر کرده که ضمن تبریک به تمام خانوم دنیا که الان من می دونم ما رو دارم شنوند تبریک میگیم این بخشی از سرانه رو با هم بشنویم بشنویم کاری از آرش تارانتیست به اسم برخیز با تا هم خدافوزی می کنیم کامران تا شمبه تا شمبه خدایی ک تو در خواب کسی اون به کسی نیست حاضر و پرواز اذان خواب بی‌قرار تو از رنج سفر از خاطراتی تا با کسی می آزادی از خا به این خو جو از بفی تا بفصی روزنامه ابرار به بنقل از یک نماینده مجلس امروز تیتر زده بود که بابک زنجانی معلول است دستگاه قضا علت را بیاورد ای بابا که پیچیده نکنین قضیه رو معلوم و علت و سر و تا و اول و ازت و آخر و همه‌ش همین بابک زنجانی مفصده فلارد مراقب به بیزه است زودتر زوتر سر چیزی راه بین باقی علل معلولا سرشون از آب نزنه بیرو هم شد راه روزنامه رسالت به نقل از سید حسن Nasrullah امروز تیتر زده بود که ریاض کنار تل اویف نابود می شود. این سید حسن Nasrullah امروز عصب نداره آقاتیه. آخه یکی رو اول بزن نابود کن بعد برو سراغ دومی. یلا نریسی دلا کردی برسه. روزنامه قانون تنها روزنامه‌ای بود که امروز با اشاره به روز جهانی زن تیتر زده بود که 8 مارس یک روز هم برای زنان همین دیگه خواستیم و تقدیر تشکری بکنیم از این روزنامه که در بایکوت کامل روز زن تقریبا نصف صفحه اولشو به این مسئله اختصاص داده بود با پسورده 997 یه پله دیگه به آخر نزدیک شدیم یقما گل گفته تو را انسانی برابر می در کنار خود نه لیلی که مجنونوار او را به آشپس خانه بپوسانم. تو را تمام زنان جهان می خواهم و تمام زنان جهان را آزاد شبکش من زنم همزاد بارو Zither Harp